بسم الله الرحمن الرحیم ما در بحث بررسی صفات حضرت حق به این بحث رسیدیم که شناخت خدا از چه تروحی ممکنه اثبات خدا تروحش گذشک است است اما شناختش یک مرتبه از شناخت خداوند به ذات ما به حسب ذات خدا خدا رو بشنسیم این رو به عنوان آخرین بحث در جلسه گذشته استدلال عقلیش رو بیان کردم کسی امکان نداره چرا؟ چون در جای خودش ثابت کردیم که خداوند واجب الوجود است واجب الوجود نامناهی است و ما ممکن وجودیم ممکن وجود متنای است و شناخت و علم پیدا کردن رابطه است بین مدرک که ما باشیم و مدرک که خدا باشد. بین ممکن وجود که ما باشیم، و واجب الوجود که خدا باشد بین متناهی که ما باشیم و نامتناهی که خدا باشد یه احاطه علمی باید پیدا بکنیم که هم چیزی اقلا محال است متناهی اصلا در شعاع نامتناهی قرار نمیگیرد گیرد یک چه برستد که بخواهد نسبت به او احاته پیدا بکنند قرآن کریم هم همین آیه شریفه رو در واقع همین معنا رو ذکر یک آیه شریفه ذکر میکنه رسول مبارکه تاها آیه صد ده ولا یحیتون بهی علم احات بهش پیدا نمی کنید علمی به او پیدا نمی کنید استدارش گفتم در روایات هم که ما رو مراجعه میکنیم اینو همین معنا ذکر شده در روایت نسبت به ذات اقدس اله ما رو در دو مرتبه نه کردند، از دو چیز نه کردند. یک نهی از تفکر در باب خدا تفکر یک فعالیت و یک عملیات نفسیست به روح انسان برمیگرده عقل. میگه تفکر نکنید در ذات خدا روایت چه بشنوی ایانکوم و فی الله بر باشید باشی جدا از تفکر فی الله اسم جامع جمیع صفات کمالی و صفات جمال و جلال است که برای چه وضع شده است برای ذات وضع شده میگه از ابعاد کمال رو ذکر نمی‌کنه فقط میگه یک ذات اینجاست که جامعه همه صفات کمال و جمال هستش بعد میگه یاکوم موجود نازنین هست ساده فرمودند یاکوم بر حذر باشید جدا مر حذر باشید و تفکر تفکر در ذات اقدس فان تفکر فی الله لا یزید الا تیهن به که تفکر در مورد خداوند چیزی جز حیرانی سرگردانی نمی آورد چرا لَأَنَّ الله عز وجل تدرکهل ابصار به خاطر اینکه خداوند به چشم دیده نمیشود ولا و لا یوسف و به مقدار موجود کمیت بردار هم نیست قابل وصف نیست که در واقع اول صفت آخر که لا یوسف به مقدار داره میگه موجود نمتناهیه اونجا که دله میفرماند امام لا تدره که هل اینو بگه شما در آیه شریفه بید به این ان نسمعه و البسره و الفعاد کل اولا کل زالق انهم مسئولا کل اولا اکزاره کل کل کل خانه انهم انو مسئولا آیه الامانت کل خانه انو مسئولا چرا سمع و بسر و بعد به بهفعات فؤات همون قوه عقل انسانه هر چیزی که بخواهد مورد تعقل بگیره دوتا ورودی میخواد یک ورودیش به چشم، یک ورودیش به چیه گوش اینها ابزاری برای تعقل کردن هستند یعنی اون چی که از این دو وادی ورود پیدا می به مرحله عقل می سن اون لایق دیده نمیشه. چیزی که دیده میشه تو چشوی به حال وجود بکنه و فرایند تعقل تو این است که تو مبصرات و مسموعات حالا محسوسات حالا بویایی و مثلا چشایی و لامسه اینا کمتر مورد بحث قرار میگید ولی اونها هم ابزارهای ورودی هستن ولی وقتی چیزی دیده نمیشه تو چیزی بخار رجوع تحکر بکنه اصلا تو درکی نداری ازش بنابراین نهی شدید از تفکر در ذات خدا. بعد حیرانی میاره تحیر میاره سرگردانی میاره آدمیزاد نمیدونه باید به این حقیقت و با این مقوله چجوری رفتار کنه وقتی شما نتوانستید یک حقیقت رو تصورش بکنید دیگه راجبش تعقل هم نمیتوانید بکنید حالا امریکه تصور نشده اگه بخواید راجبش حرف بزنید جز اوهام چیزی دیگه گفته نمیشود دیگه جز عباطیل چیزی دیگری گفته نمیشود دیگه چون تصورش نکردی. اصلا به تصور نمیاد بنابراین تفکر نکنید در ذاتش و همین روایت و شبیه همین روایت از ذات مقدس حضرت باقر علیه السلام امام باقر ایاکم و تفکرف الله برعذر باشید جدا از تفکر کردن در مورد الله الله اسم ذات است یعنی در ذات خدا تفکر نکنید جدا تفکر نکنید حالا هرگاه که خواستید مثلا فرض بفرمایید وارد بشوید لکن اذا اردتم ان تنظروا الی عظمته فانظروا الی عظیم خلقه اگه خواستید عظمتش را یک شناختی پیدا بکنید از طریق عظمت مخلوقش این کار رو بکنید یعنی از طریق آثارش بهش برسید و الا شما موجوداتی نیستید که بتوانید به ذاتش راه بده کنید. شما موجوداتی نیستید یا موجوداتی هستند که بتوانند این کار بکنند. بکنن. هیچ کس نمیتواند این کار را انجام بدهد. چون همه خلائق نهایتا ممکن وجود هستند برای اینجا راهی به سوی شناخت ذات خدا ندارن این نهی از تفکر در مورد خداست نحیه دو در ذات خداست نهی دوم میگه آقا نه تنها راجب ذات خدا فکر نکنید، بلکه راجب ذات خدا حرفم نزنید. نهیه از تکلم نه از تکلوم یه نکته ای رو بگم بهتون و که به ما گفتن اگه میخواید راجب عظمت خدا اندیشه بکنید به عظمت مخلوق پی ببرید عظمت مخلوق رو بررسی بکنید حال شما میدید در مخلوقات خداوند جستجوگری بکنید و عظمتی رو برای حقایق و مخلوقات الهی پیدا میکنید خب بعد یه سری بندهایی هم ازش میزنید بگید این عظمت خداست آه؟ یعنی نامحدودش میکنید یه عظمتی در یک موجود حساب میکنید بعد همون عظمت رو نقایصشون میزنید بگید این عظمت خداست میگه این کارم نکنید چرا چون این کار شما را به وادی تشبیه میاندازد و موجب میشود که حضرت حق شبیه چه بشود مخلوقش بشه و تشبیه کردن خلاف تسلیح قرآن است لیس که مثل خلاف عقل است خلاف عقل است چون واجب به هیچ وجه من الوجود شبیه ممکن نیست پس حرفم میگه راجب ذاتش نزنید تکلم در باب ذات اله الهام ممنوع است ممنوع است آیا به این معنا که میگن اندیشه نکنید اندیشه کردن آزاد نیست نه این نیست بلکه میگن آقا اندیشه بکنید ولی در چیزی که میتوانید اندیشه بکنید یه چیزایی در توان شما برای تفکر و تعقل وجود نه دست در توانتون نیست ما توی بحث اخلاق عملی یک تقسیم بندی داریم که میگیم که قرآن کریب بیفرمایت هدف رسالت انبیان لقدر ارسن نارسول نابل بینات و انزل نامعامل کتاب ول میزان لیقوم ناسو بالقست حضرت عقب ما رو با بینه فرستادیم و بایینه یعنی با موجزه و با استدلال فرستادین و با اینها کتاب فرستادین یعنی کتاب های آسمانی فرستادین دادیم به اینها قدرت قانونگزاری دادیم در مقابل قانون مدنی قانون شرق حجیت داره و مثال ها و شما خودتون میدانید بعد که چه اتفاقی بیفته لیاقوم و ناسو بالقسط مردم غیام به قسط بکنن یعنی صاحب ملکه ادالت بشن ما اونجا بحث میکنیم که صاحب ملک عدالت بشن انسان ها در قوه در نفس حیوانیشون دو تا قوه دارن قوه غزبیه و قوه شهویه و در نفس ناطقه شون یه قوه دارن به نام قوه تعقل خب این بحث به حد اعتدال برس قوه شهویه پایینش میشه چی هرزگی پایینش میشه خمودگی یعنی اینکه که انسان کل تمایلات و منافعی رو که لازمه زندگیش هست تو اصلا بذاری کنا این میشه خمودگی این رو کنا این میشه تفرید افرادش میشه چی میگه هرزگی هر چیزی رو میخواد از هر راهی میخواد میگن نه اون خمودگیست در قوه در, در واقع ارز بزرگی که قوه شهویه و نه اون هرزگی بلکه چی هستش افت و در قوه غضبی که شما مزراتو به اش دفع بکنید هر ضرری که وجود داشته باشه رو بواسطه اش دفع حد پایینش بشه جب ترس حد بالاش بشه تحور بی باکی میگن نه اون خوبه نه این خوبه حد وسطش خوبه اعتدال شجاعت شجاعت حد اعتدال قوه غضبیه است افت حد اعتدال قوه چیه شهویه شهوت از قدیم معنای شهوت جنسی نیست بلکه شهوت جنسی یکی از مصادیق قوه شهویه است. قوه شهویه یعنی هر چیزی که شما به واسطش کسب کنید، به عنوان منافع این که شما دنبال کار میرید به خاطر که میگید کار باعث در واقع ارتضاق زندگی من میشه جوهره زندگی منه یه منفعتی داره من به دنبالش هستم اون چیزی که شما را به دنبال کار میبرد محرک شما هست قوه شهویتونه شما مثلا میگید که ازدواج باید بکنم چرا چون در اصل ازدواج به کمال میرسم خب اون که محرک شما میشه برای رسیدن به این کمال پردردسر اون قوه شهواییه هستش یعنی اون که در واقع شما رو به دنبال منافع خواستنیها تمایلاتتون میندازه و قوه قضوی رو دفع میکنه هر ضرری که در زندگی شما دفع میشه واسه قوه زغ... حالا یه ارسانه هایی هستند در دفع قوه زرالیه میگن ورش کن جبنه میگن باست صفتا مثلا چه بکنیم میشه تحور میگن آنه تحور است نه این شجاعت اون هم نه اینقدر یه حالا چی بود از هر راهی بود میشه عرضگی این که کسی تعدیدش کن ورش کن رحبانیت رو تا پیشی بگیریم میگن رحبانیت هم در اسلام وجود نداره میشه چی؟ و در قوه ناطقه انسان دو تو مرحله وجود داره یکی تعتید کردن در باقی قوه ارزب تو که ناطقه انسان هست بهش میگن بلاحت گای و قادم که به کسی میگن ای اب فلان مثلا کنید. اون خب این یعنی که تو قوه اقل رو تعتید کردی ابله گای و قاد صفت فرش نیست این آمازه طرف یعنی صفت طرف و در عمیه. یعنی تحتیل کرده، قوه ناطقه رو تحتیل کرده اصلا تعقل نداره اصلا تعقل نداره از این طرف هم میشه سفاحت سفاحت به چی میگن؟ همه اینا رو گفتم تو یه دیگر رو بگم صفاحت پرداختن به اموریست که در توان ما نیست کسی که دنبال ذات خدا میرود و بهش میگم چی؟ صفیه چون در توان ما نیست در توان ما نیست پیدا کردن اینکه اولین مخلوق مرغ بوده یا تخم حالا هر کدوم پیدا کنی خب اینکه در توان ما نیست یک دوام که از بزرگوتون حالا هر کدوم باشه چه مشکلی داره الان جفتش گران قیمته یا مثلا در درست مشکلی رو حل میکنند هر کدومش اول باشه خب پرداخت آها نه تو رو حضرت عباس بریم دنبالین که که های حضرت آدم چه جوری ازدواج کردن اون که خواهر برادر بودن مثلا خب ببینید این پرداختن به این امور جز که مثلا آدم نگاه میکنه از دور نکیه یه پله بالاتر هم یعنی یارو عجب سنخته سفیه این دیگه سوال علمی نیست مخلص کلام سال علمیست میخوای بگی برادر خواهر با هم ازدواج کردن حرام زاده هستن دیگه حلال زاده ترین آدم از رسول گرامی اسلام دیگه از همین فرایند بیرون اومده میخوای بگی خدا یه جا یه کاری کرده یعنی تو فهمیدی خدا نفهمیده چیزایی نبیدی تش علمیست شیطنت شیطنت یعنی تفک پوره بطر بهش میگن تفکر بطر را رو امیرالمومنین همون شیطنت است یا سفاهت پرداختن به چیزی که خب چیزی رو حل نمیکنه آقا نمیکنه حالا با ذات چی خب نمیرسی نمیرسی وقت در قوه ناطقه حد اعتدال چیه؟ حکمت اگر کسی در این سه قوه شهویه و قوه قذبیه شهویه رو بیاره به افت برسونه قذبیه رو بیاره به شجاعت برسونه و ناطقه رو بیاد به حکمت برسونه میگن این رسیده به ملکه ادالت لیقوم ناسو به این قام به قصد شده این کار انبیانیست، این هدف انبیاست انبیا تعالیمشون ما رو به اینجا میرسونه و ما لرسول الا بلاق اونا کارشون انجام دادن خدا هم کارشو انجام داده در و شما اراده گذاشته در بندب شما عقل گذاشته در بندب شما انتخاب گذاشته ما میتوانیم با اراده انتخاب بکنیم به واسطه عقل راه و مسیر هدایت انبیاء سلام الله علیه این رو تونستانوی در اون مسئله به قیام به قسط برسیم. ولی وقتی خب اقدامی نمیشود دیگه نمیشه دیگه مثلا توقعی هم داشت دیگه توجه همون چرک بنابراین پرداختن به ذات خدا در پوشش اینکه این یه این بحث علمیه. بحث علمی نیست برکه صفاهت چیزی که توان و قدرت شما چی آقا؟ خارج شما سنه راهی میشت نداریم. آقا بریم ببینیم مرکز زمین کجاست متر کنیم میگه همون چی که وسطی وسط زمینی نه قبول نداره خب برو متر کنیم کسی بیتونه مترش کنیم بگه پرداخت داره به امور خواستم این رو بگم مثال بزنم براتون دو سه تا بزرم بس دیگه در همین باب حضرت می فرماید تکلم صحبت بکنید فی خلق الله در مخلوقات الهی ولا تتکلمو الله اما در ذات خدا حرف نزنید در روایات اول میگو اصلا فکر نکنید بعد چون فکر شما به این میشود که تصوری ندارید تصوری که ندارید اوهام رو میگید اوحام رو میگید تشبیح میشود فهمد ولا تتکلمو فالله در ذات خدا هم حرف نزنید چون جز وهمیاتتون چیز دیگری رو نخواهید گفت و ان کللا ال... فلاحف و ان در ضات عقدس اله لا یزداد و صاحبه هو اللا و تهیها رو جز به واده تهیور نخواند سر تیمارستان خواهد بود چیزی که آدم درک میکن بش بریم ببینیم که قطره های آب اقیان او چند جاست برو به اشبار ببینیم چه ترش در میگن امام صادق به یکی از اجلای اصحابشون جناب محمد ابن مسلم محمد مسلم یکی از اجلای اصحاب عربعه امام باخر امام صادق هست آنچنان که حضرت فرمودن محمد ابن مسلم, محمد ابن مسلم از سلمان مهم همین کیه محمد ابن مسلم از سلمان مهمتره. حضرت به محمد ابن مسلم یا محمد ان الناس لا یزال بهم مردم در همه چی صحبت می‌کنه لا یزال چه مردم رو که ما دیدیم راجع به همه چی صحبت می‌کنه نان و پرز سبزی تا نان و تکنولوژی همه چی در این حوضه از مردم میاد حتی سایت کلمو فلا حتی راجب ذات خدا هم حرف میزنند فایذا سمعتم ذلك هرگاه شماها به عنوان اصحاب من امام صادق یه همچین چیزاری رو دیدی دی دی دی یه جایی دارن راجع به ذات خدا صحبت میکنند فقولو بلند بهشون بگید لا اله الا الله الواحد الذي لا كنس یعنی بابا تمامش کن هران که تو می‌خوای بگی میخواهی از باب تشبیه وارد بشی با رفع نقاعث ممکنین ولی این حد واجبی نیست تو اولا تمام نقاعث ممکنات رو نمیتونی از ممکن بگیری تصور نمیتونی بکنی تا بتوانی مثلا فرض بفرمید که پس هم نهی از تفکر کردن و هم نهی از سی تکلم تفکر چون امکان ندارد تکلم چرا چون اگه به خواهی حرف بزنی نیکی شما رو به چی؟ تشبیح. و تشبیح باطل و حرامه حرامه خب پس از اون را که نبیتونیم بریم از اون را که شناخت نداریم ببینید این آزادی اندیشه نیست در بگید آقا عجب دین جلوی آزادی اندیشه ری گرفته نه اونجا از اندیشه امکان نداره کسی بخواد بره وارد اندیشه بشه وارد وادی صفاحت شده در چیزی که از توانش خارجه اما راه دومی از برای شناخت حضرت حق وجود دارد و اون اینکه خدا را از طریق آیات، آثار و نشانه هایش بشناسید در لغت راقب در کتاب مفردات میگه آیه میدونید به چه معنایی شما میگید خدا رو از طریق آیه بشناسید شما ترجمه کردید آیه رو معنای نشانه اما وقتی حضرت میفرماد از آیات الهی خدا رو بشناسید میگن هیال هیل و ظاهره آیه عبارت از نشانه آشکار پس هر نشانه آیه نیست نشانه هایی که آشکار باشن ظاهر باشن در دلالتشون بر اون زل آیه لذا تعریف آیه این است عبارت است از علامت و نشانه که به طور واضح و آشکار انسان را به چیزی راهنمایی نمایی اون چیزی که شما به سویش راهنمایی شوید رو میگن زل آیه اون چیزی که شما را به میرساند و دلالت میکند رو بهش میگن چی آیه ولی از نظر اصطلاح هر دلالت کننده ای آیه نیست آیه باید شما را به طور آشکار به اون مدلول برساند به طور واضح به اون مشمع من... دور برساند مبین باشد یک مبین باشد دو مبهم نباشد این یک تیکه رو دقت بفهم از رو میخونم یه مقاله یه. شناخت از طریق آیات عبارت است از علوم و معارفی که از راه علائم و به واسطه آثار و خواست چیزی برای انسان حاصل می شود شما دود رو می بینید و بر آتش چگارش میکنید؟ راه این می شوید یه هر دود بود نمی گید که مثلا نه ممکن است که مثلا فرض هم سنگی به سنگ خورده است. دیگه هر دود ببینن میگن چیا؟ آتیش دیگه اینو بیش میگن دود رو میگن آیه نشانه چرا چون واضحه هر کی هم که ببیند به همین دلالت میرسه ادراکات و احساسات انسان گاهی بی واسطه است و گاهی با واسطه شما گاهی بر گرمی شی به واسطه دود راه نمایی میشه بیگید اونجا دوده آتش از پس چیه؟ گرمه گاهی اوقات به جایی که دیگه به دودکش نگاه بکنید دستتو میذاره به بخاری و میگید چیا آقا گرمه اون شک اول رو میگن با واسطه شک دوم رو میگن چی؟ بی واسطه؟ ادراکات و احساسات انسان گاهی بی واسطه است و گاهی باواسطه. واسطه مثلا گاهی انسان از متصاعد شدن دود از لوله بخاری میفهمد که بخاری گرم است و گاهی با دست زدن به بدنه بخاری احساس گرما می‌کند شناخت اول با واسطه و شناخت دوم چیه ها بی واسطه است شما دست رو می رسیدی ولی اونجا میبینی تا برسی انتاج بکنی توجه میفهمید شناخت اول از طریق علامت و آیه است ولی شناخت دوم از طریق علامت و آیه نیست شناخت اول شناخت عقلی است و شناخت دوم شناخت چیه؟ حسی است پس شناختی که از طریق آیه حاصل میشود شناخت چیه؟ عقلیه لذا در آیات قرآن مکرر می بینید که اگر در خلقت آسمان و زمین آیات لله ولی لل لل للموقن یعنی برای صاحبان اندیشه ن برای هر کسی چرا؟ چون دلالت از آیه به زل آیه یک دلالت عقلی است دلالت با واسطه است اما به حکم عقل است. یک زرافت بسیار شدید اینجا وجود داره. ولی دقت بکنه. این هر جایی گیرتون نمیاد. نه دو یک مثلا شاید به اندازه ده دقیقه بحث شناخ شناسیه. ولی آسانه. دیگران نگوشه. چون میدونم بحث شناخ سنگیه. ولی یاسمشه. بررسی دقیق انواع شناخت چه با واسطه چه با واسطه نشان می دهد که بیشتر شناخت انسان حتی شناخت که آنها را شناخت هند سسی شناخت عقلی است و از طریق علائم و آیات حاصل می گردد حالا من مثال می زن. شناخت حسی یعنی که به حواست پنجگانه شما حاصل بشه یا میبینید یا میشنوید یا لمس بیکنید یا میبویید یا چشید یکی از ایناست درسته دایره بیشتر علوم حسی شما مسموعاتتون هستند و مبصراتتون هستند مذوقات و اینها خیلی کم هستند ولی خب بالاخره بخشی از علمتون هست حالا من از شما سآل میکنم علم به اینکه که یخ سردست به واسده چیه؟ بله دست مبارکتون رو میزنید بهش بعد بگیش, بگیش سرده درسته؟ درسته. نه دیگه درست نیست دیگه. اصلا درست نیست چرا؟ به خاطر اینکه این لامسه شما جز یک سری تأثیرات چیزی رو ارسال نمیکنه فقط یک تاثیراتی رو به ذهن شما ارسال میکنه این تأثیرات در ذهن شما تحلیل میکنه که این سرده الان من از شاهدش چی شاهدشونه الان من از شما سوال میکنم که یخ سرده یا گرمه میگه الان یخ جلوتون بود اون چیزی رو که به حکم عقل به دست آوردی داریم میگنیم. به تاییدش بکنیم. این فرق میکنه. خیلی چیز دقیقی بود بهتون گفتم. خیلی دقیقه. محسوسات همواره به واسطه چی به دست میاد؟ همینیش واسده هست. محسوسات. امروز مادر شما قرم سبزی درست میکنه. اگه خوشمزه باشه فردا هم که قرم سبزی درست میکنه بخواد خوشمزه باشه قطعا باید قرم سبزی رو چیکار بکنه؟ بله درست بکنه دیگه. یعنی حس شما از خوشمزگی در اثر چیه؟ تکراره اما وقتی میشیید میگی مادر من قرم سبزی خوشمزه درست میکنه. این دیگه باز حکمه؟ عقله یعنی باید عقل شما خوشمزدگی یعنی تشکیص بده و الا هر رو با خون رو سبزی بخوری اگه بخارجه به خوشمزدگی صحبت بکنه هر رو باید بچشید ولی شما وقتی به طور کلی دری راجب صحبت میکنی کلیات کاری چی هستن؟ کار عقل هستن بنابراین اگر ما محسوسات رو هم ادراک بکنیم این ادراکش به واسطه چی آقا؟ عقله و الا این قوه لامسه من فقط یک تاثیراتی رو چیکار میکنه منعکس میکنه مثل نوار قلبی که فقط یک سری علائم رو چیکار میکنه برداشت میکنه این سری از ارتعاشات رو برداشت می‌کنه اما این دکتر گی ارتعاشات رو نگاه میکنه میگه آقا مثلا این جریان چه اتفاقی داره می‌افته یک کسی دیگه باید این کار بکنه هر کسی نمی‌تونه از این ارتعاشات در واقع بر... بکنه بهره برداری بکنه این قوه لامسه شما فقط یک تأثیراتی رو از اون شی به قدرت مغز شما میده به قوه عقل شما میده و قوه عقل شما تعمیق میکنه اصلا یکی از کارهای عقل تعمیق کردن قواه حسیه و این رو در واقع بستش میده گستردشت میکنه در محس شناخ توضیح دادیم که یکی از حساس ترین کارهای ذهن تعمیق شناخته ما توی بحث های مقدمی شناخت ها رو کامل مفصل صحبت کردیم میخوام ناامیدتون بکنم معیوستون بکنم حس مانند آینه است فقط صورت را منعکس می و توانه انعکاس معنا را نداره ببینید عکس شما توی آینه میاد دیگه خوشگل بودن و زش بودن و توپل بودن و لاغر بودنش کار کیه؟ کار عقل آینه بدبخت بجاره چه می که این توپله یا توپل خوشگل یا خوشگل نید؟ یک کسی دیگه این کارو داره می و قوی قوه عقله حس شما نسبت به اون یخ فقط یک تأثیراتی رو منعکس می کنه حالا این تأثیرات چیه؟ قوه عقلتون میگه سرماست کما اینکه اگر همین رو به آب داغ بزنید دستتون رو مثلا فرض کنید به آب گوشت بزنید اون چیزی رو که ها تحصیلات مراکست میکنه گرماست بگید داغ کشه بعد فیلا این و مناسب رو هم انجام میده دیگه و توان انعکاس معنا رو نداره یعنی اون خوشگلی اون زیبایی و در مقابل آینوگی آینه به صرف این که آینه است چی کاری همتونه بکنه قوای حسی شما هم همینه رابطه فقط منعكس میکنن بدون اینکه این سرده بدون اینکه این گرمه بدون اینکه این نرمه بدون اینکه زبره هیچ چیزی نداره زبری و گرمی و نرمی و مثلا فرض بفرمایید سردی او کار عقله ولی ذهر در صورت نفوذ بیکنند و به شناخت سطحی عمر میده یعنی اون استکی اومد بگه آها این سرده یک هر چیزی که با این مشخصات بیاد سرده به کلی میکنه هر چیزی که با این مشخصات بیاد سرده و معنا را نیز منعکس مینماید به عبارت دیگر حس مانند آینه نمیتواند علم و عشق و کینه و خوبی یا بدی افرادی و یا بدی افراد رو ادراک بکند آینه هم حالات انسان رو نبیتونه ادراک بکنه علم یعنی چی؟ علم انسان رو نه چشم شما بیتونه و نه مثلا گوش شما بیتونه اینا رو ادراک نمی کنه علم شما یعنی آتش شما به معلوم این آتش شما به معلوم کار کیه؟ کار عقله این که از بزرگ تو که نسبت به یک کسی کینه دارید خدای نکرده یا نسبت به کسی که مجوزش رو دارید عشق دارید الله خب کار کیه؟ این کار احساسات این تشخیص حالات کار حواستون نیست کار عقلتونه حواست شما فاقده این از که بتواند حالات شما رو درک بکنه نمیتون دعوار رو میبینه اما حق و باطل دعوار رو شما نمیتون تشرف بده میبینه اگه یه پیل و مردی داره کتک می‌خوره؟ اما نمیتون بفهمی که این کتک خوردنه، کتکیهس به ظلم، کتکیهس به حق، کتکیهس قوی یا کتکیهس حسن، کدومونه میتونی تشخیص بده. این تشخیص ها با عقل نق به عبارت دیگر، حس مانند آینه نمیتواند علم، عشق، کینه و خوبی یا بدی و حالات دیگه افراد رو درک کنه. حالات درونی انسان، نفسانیات انسان رو آینه نمیتونه درک کنه که آینه نمیتونه درک کنه حسم نمیتونه درک کنه ولی ذهن میتواند ابزاری که ذهن به وسیله آن حقایق مذکور را درک می کند آینه نامیده می شود نشانه نامیده می شود یعنی اون چیزی رو که از ارتباطش با یخ میگه سرده اون چیزی که اون سرماعه را میکنه کنه و واسه نشانه است اونی که به واستش میگه زیباست فلانی به واسطه چیه؟ نشانه است. حالا فرایند این چیه؟ فرایند رسیدن و حکر کردن ذهن چیه؟ این یه فرایند پیچیده شناخشناسیه. یعنی بهش میگن از ذهن شناسی ذهن از کجا میرسد به مقوله زیبایی ذهن از کجا میرسد به مقوله مثلا فرض کنید کدورت از کجا این چه فرایندی میرسه اما هر چیزی که به او کمک میکنن که تو به اینجا برس اسمش چیه؟ آیست نشانه است نشانه واضحه نشانه است که حتما شما رو به اون حقیقت میرسون و به غیرش هم نمیرسون من گفتم که یقاعدی میگم و بیشترم نمیگم تمام شد بنابر این ذهن ما هستش که ما را می به در واقع حقایق اشیاء برسوناد اونم به واسطه واسطه گری چی آیات و نشانه ها حالا از مجموعه چی که ما در رابطه با محض شناخت اینها گفتیم در رابطه با شناخت از طریق آیه گفتیم میخوام این پنج نکتر رو به عنوان نتیجه بگیم یک شناخت از طریق آیات شناخت حسی نیست بلکه شناخت چیه؟ بنابراین شناخت خدایی شناخت عقلی شناخت حسی نیست ولو به آیات رو جمع کنید ولو به آیات رو جمع کنید یک دو دلالت آیه برزل آیه از دیدگاه عقل باید روشن و قطعی باشه یعنی اگر آما چیزی رو آیه قرار داده این باید دلالتش چی باشه آقا روشن و قطعی، غیر قابل این کار باشه سه شناخت انسان از اموری مانند علم و عشق و کینه مستقیم و بلاواسطه نیست بلکه به واسطه چیه؟ به طریق آیات نشانه ها هست ما از نشانه ای کینه را می فهمیم. ما از نشانه ای مدلولمون می شود مثلا اجق از نشانه. بعد پنجامه شیستش شناخته. بله؟ جا. شناخته انسان از گذشته و آینده هم از طریق آیات؟ حالا اینو من یادم رفت. یکی رو بگم. این قطعه رو یادم رفت بگم. شما راجع به گذشته صحبت میکنید. صحبت شما از گذشته از پدرتون مثلا خدای ناکرده اگر دنیا هفته باشه این صحبت صحبت با واسطه است صحبت بی واسطه است چون پدری نیست که در عمق حس شما قرار گرفته باشه که در محدوده رادار حسی شما قرار گرفته باشه پس شما وقتی از گذشته دارید صحبت می‌کنه صحبتتون از طریق چیه آیس نه از طریق خود و اون حقیقت چون خود اون حقیقت وجود اصلا حس ناقصه چرا محدود است به اون زمان موجود و محسوس و محدود است با اون مکان موجود و محسوس شما ما آدمی که اینجا هستید دارید میبینید ولی وقتی میدید راجب اینجا دیگه نمیبینید بلکه چه میکنید؟ تعقل دارید میکنید این تعقل شما از جای محسوس تختی اونجا رو ترک کردید در واقع با واسطه چیه؟ آیه هستش یعنی چیزی که باعث شده شما به این حقیقت اینجا برسید یک و حقیقت اینجا رو با کلاس دانشگاهتون فرق باشید دو و حقیقت اینجا رو با خونتون فرق گذاشته باشید سه به چقدر یک شناخت آسان چرا پیچیده است و چقدر عظمت داره خدا که شما ملحکس ولا یشعر دریدی کارا رو انجام میدید یک و قطعا اینو سپاسگزاری از حضرت نمی کنیم دو چقدر مزدوم اوسه سه چقدر مزدومه چه کار داره چه فرایندی داره شناخت رو ما اصلا این فرایند شناخت رو داریم می کن کار سختیه کار سختیه ولی واقعاوی میشه بنابراین شما نسبت به گذشتتون نسبت به آیندتون هر چی راجعه محسوسات صحبت میکنید حرفتون حرف چیه؟ از طریق آیه است و پنجمین. شناخت انسان از بسیاری از چیزهایی که خیال می‌کنه شناخت حسی است این یه خود پیچیده است ما راجع به صحبت نمی‌کنیم این یک شناخت در واقع عقلی است هر چیزی رو هم که شما فکر می‌کنید حسیه شناخت شما از خورشید فکر می‌کنه حسیه نه حسی نیست عقلیه شما دیگه نمی‌خواستین وارد فراینده در واقع تشخیص ذهن بشین چون کار پیچیده‌ایه حالا بر اساس این مقدمه‌ای که ما گفتیم یکی از طرق شناخت از خداوند از طریق آیات از طریق آیات یعنی از طریق نشانه هاست حالا راجع به نشانه های خدا صحبت بکنیم شناخت خدا از طریق آیات شناخت او را از راه دلایل و علائم و نشانه هایی قرار میدهد که به طور قاطع و به صورت واضح و روشن وجود او رو ثابت میکنه و به ما شناخت میده یعنی چیزی علامت خدا میشود که ابهامی درش وجود نداشت داشت دومی شناخت خدا از طریق آیات شناخت امور همانند شناخت امور محسوس از طریق آیات است ولی حسی نیست بلکه ها عقلیه پس عقلیه درستی که از محسوسات، ولی واسطه چی حکمه عقله این رو هم بگی و بحث و تمام بکنیم مثال میخوام بزنیم ببینیم شما وقتی در مقابل آینه قرار میگیرید تصویر در آینه هست شما چی هستید؟ زد تصویر این تصویر این زد تصویر وقتی در مقابل تصویر قرار میگیره چهار حالت داره ما میخوایم از طریق آیات خدا رو پیدا بکنیم آدم ها چهار نو هستن در پیدا کردنه برای که او چهار معلوم بشه چیه باید مثال بزنی آدمی که در مقابل آینه قرار میگیره اون چیزی که در آینه است تصویره اون چیزی که در مقابل آینه است و تصویرش در نشون میده چی هستش زد تصویر شما هستید خیلی مثلا. یه ایده هستن وقتی در مقابل آینه قرار می گیرن افرادی هستن که با مراجعه به آینه آینه ابتدا در این آینه خودشونو رو و بعد آینه رو می بینن. اول می کنید که خرابه درستش میکنه ای این آینه است پس اول خودش رو می بینه بعد چی کار بکنه آینه رو یک دو تو امانی که داره خودش رو تو آینه می‌بینه متوجه که این زلفو رو داره به واسطه آینه داره رو مرتبش می‌کنه هم متوجه خودش هم متوجه چیه آینه است یک روح هم هستن وقتی میگرن جلو اینقدر آدمای تیزبینی هستن اول لکه آینه رو بمیمره بعد موانش رو درست میکنه که یه خدای نکرده در اون چی که میبینه یه وقتی احساس بدی بهش دست نده اینجا خرابه ولی من که خوشگلم یعنی <تص> اول دقت در آینه بیکنه بعد خودش رو میابد در آینه یه ایدم اصلا, اصلا وقتی در مقابل آینه قرار می‌گیره فقط آن اصلا بابا عجب چیزیه عجب چیکار کرده اون صنعتگری که این نقره رو مثلا به این شک در آباده چقدر زیباست این آمین اصلا یه دونه منشت داشته میبینن یه دونه منشت داشته و چهار نو دیده یه ده فقط آینه رو میبینن یه ده اول آینه رو ببینن بعد خودشو میبینن یه تو تاعمال میبینن یه ده اول خودشو رو بینن بعد آینه رو میبینن حالا ما بخواییم از آیات خدا رو ببینید یه ده اول آیات رو ببینن بعد بجاب اون کسی که این آیا رو خرب کرده کیه اول اینو رو میبینه ولی میگه عجب یه دستن وقتی به آیات میرسن میبینه که مثلا در اعماق اقیانوس فرض بفرمایید ماهیا چه کر رو فرقی بیکنن اما در این حالی که دره میبینه میگه علا عظمتالله چی کار کرده خاله هم اینو داره میبینه هم او رو در واقع چیز میکنه یه عده اسن آیاتو که میبینن بلافاصله سجده میکنند اصلا دیگه کاری نداره به آیه میگه زول آیه چی چیکار کرده یوسف کیه یوسف پرور چی کار کرده اگه بناست یوسف زیبا خالقی داشته باشد خالقش قطعا زیباست از او او چی کار کرده دیگه کاری به این آیاتم نداره یه ادن هستن اصلا کسی رو نمی فقط زل آیه رو می بینن این لسان مبارک از سید و شهده در دعای عرفه این معرکست. اصلا آدم نمی بینه مارم ای تا ازمه ازم از. من نیستم که خداست از سید و شدها چه خوشگل می گه کیفه یستدل و علنک کیفه یستدل و علنک بما هو فی وجودي مفتقرن علیک من چجوری اثبات بکنم تو را به واسطه خورشید که خورشید در بقایش محتاج به توست یعنی من از پایین باید بیام تو را اثبات کنم علی غیر کم من از ظهور مالک سالک یعنی خورشید بیشتر از تو ظاهره بیشتر از تو حقه حتی یکونه و المظهره لک از تو معتبرتره که میخواد تو رو اثبات کنه متاغبتا کی قایب بودی حتی تحتاج الی دلیرن یداللالن که قایب بودی که اصلا من دنبال دلیل بگردم میگم ما خورشید و ستارگان بخوان تو رو ازباد کنن اینا چیه هست و متا و تحت تکونل آثار حیلتی توسل و النگ تو مگه دوری که اثر بخواد به تو برسونه منو مگه تو دوری که آیه بخواد تو رو منو به تو برسونه بعد یک جمله انتهایی و تمام عمینت عین الله ترا کور چشمی که تو رو نمیبینه از جلو آینه بره اصلا آینه رو نبینه میشه این موله امام حسین این موله امام حسین که اثر رو میبینه ولی اصلا به اثر کاری نداره آثار رو میبینه ولی اصلا به آثار کاری نداره به صاحب آثار کاری نداره شما کی هستین این حد از دید ما را به حضرت حق میرساند ولی لسان حق این است که خیلی آدم باید پایین موشه که از خورشید به خورشید آفرین برسه که از انسان به انسان آفرین مرسه ولی با همه این انصاف که پایینه اما یکی از راه های متقنه اما نه برای همه نه برای همه همه از این راه نمیتوانند استفاده ببرند نمیتونن اریشام مشی کرد چون اولا باید استدلال عقلی بلد باشند چون از طریق در واقع آیست که به حکم عقل باید شما برسونه و خب خیلی ها در تعتیرات دهری به سر میبرن دهرشون تعتیر کلا کلا تعطیلات دیگه کارشون نمیشه کن ولی بعدم حضرت عقل میفهمد اینا ما رو به خدا میرسونه زالکه آیاتون اما لعول الال صاحبان عق آنچه که یافت نشود آنم آرزو صاحبان عق کجای هم آی نه علول الباب. صاحبان عق. کجا که بره تو مقابل آینه بریسته نه این که اول خودش را نه اینکه که تو امان با خود آینه را نه این که اول آینه را بلکه فقط آینه را فنا بشه این شناخت برای عبوحدی از شخصیت های نظام به خلقت حاصل میشه آیات در قرآن کریم به دوازده دسته تقسیم میشوند این آیات رو در جلسه آینده انشاءالله بررسی خواهیم کرد طور به طور اجمال البته چون من نمیخوام راجب این صحبت کنم قرارمون راجب چی صحبت کنم؟ صفات صحبت بکنم ان الحمد لله رب العالمين